مصنوی معنوی مولوی برنامه 140م تمامت کتاب موت تدلکریم، ای حیات دل حسام الدین بس مایل می جوشد به قسم سادس گشت از جذب چتو علامه در جهان گردان حسامی نامه پیشکشم می ای معنوی قسم سادس در تمام مثنوی شش جهت را نور ده، زین شش صحف، کن حوله هولهو منلام یتوف. عشق را با پنج و با شش کار نیست، مقصد او جز جذب یار نیست. بوکه فی ما بعد دستوری رسد رازهای گفتنی گفته شود با بیانی که بود نزدیکتر زین کنایات دقیق مستتر راز جز با رازدان انباز نیست راز اندر گوش منکر راز نیست. لیک دعوت وارد است از کردگار. با قبول و ناقبول او را چکار؟ نه نهصد سال دعوت می نمود. دم بدم انکار قومش، می فزود، هیچ از گفتن انان واپس کشید هیچ اندر غار خاموشی خزید گفت از بانگ و علالای سگان هیچ واگردد ز راه کاروان یا شب محتاب از غوغای سگ ساست گردد بعد را در سیر تگ محفشاند نور و سگ او او کند هر کس بر خلقت خود می تند هر کسی را خدمت داده قضا در خور آن گوهرش در ابتلا چونکه که نگزارد سگ آن نعره سقم من مهم سیران خود را چون هلم چون که سرکه سرکگی افزون کند پس شکر را واجب افزونی بود قر سرکه لطف همچون انگبین کیندو باشد رکن هر اسکنجبین انگبین گر پای کم آرد ز خل آیدان اسکنجبین اندر خلل قوم بروی سرکه ها می ریختند نوه را دریا فزون می ریخت قند. قند او را بود مدد از بحر جود. پس ز سرک اهل عالم می فزود. واحدون کل الف بود آن ولی بلکه قرن است آن عبدالعلي خم که از دریا درو راه شود پیش او جیهون ها زانو زند خاصه این دریا که دریاها همه چون شنیدند این مثال و دمدمه شد دهانشان تلخ از این شرم و خجل که قرین شد نام اعظم با عقل. در قران این جهان با آن جهان این جهان از شرم میگردد جهان این عبارت تنگ و قاصر رتبت است ورنه خس را با اخص چه نسبت است زاغ در رز نعره زاغان زند بلبل از آواز خوش کی کم کند پس خریدار است هر یک را جدا اندر این بازار یفعل مایشا نقل خارستان غذای آتش است. بوی گل قوت دماغ سرخوش است. گر پلیدی پیش ما رسوا بود، خوک و سگ را شکر و حلوا بود. گر پلیدان این پلیدی ها کنند، آبها بر پاک کردن میتنند. گرچه ماران ذر افشان می کنندند. ورچه تلخانمان پریشان می کنند. می کنند. نحلها بر کوه و کندو و شجر می نهند از شد انبار. شکر زهرها هرچند زهری می کنند زود تریاقاتشان بر می کنند این جهان جنگ است کل چون بنگری ذره با ذره چودین با کافری آن یکی ذره همه پر رد به چپ و آن سوی یمین اندر طلب ذره بالا و آن دیگر نگون جنگ فعلی شان ببین اندر رکون جنگ فعلی هست از جنگ نهان زین تخالف آن تخالف را بدان ذره ای کان معو شد در آفتاب جنگ او بیرون شد از وصف و حساب چون ذره معو شد نفس و نفس جنگ شکنون، جنگ خورشید است و بس. رفت از وی جنبش تاب و سکون. از چه؟ از انا الیه راجعون. ما به بحر تو ز خود راجع شدیم. و از رضا اصل، مسترزع شدیم، در فروع راه، ای مانداز غول، لاف کم زن از اصول، ای بی اصول. جنگ ما و سلح ما، در نور عین، نیست از ما، هست بین عین جنگ طبعی جنگ فعلی جنگ قول در میان ها حرب است حول این جهان زین جنگ قایم می بود در اناسر در نگر تا حل شود چهار انصر چار استون قوی است که بدیشان سقف دنیا مستوی است هر ستونی اشکننده آن دگر استون آب اشکننده آن شرر پس بنای خلق بر ازداد بود لا جرم ما جنگیم از زر و سود هست احوالم خلاف همدگر هر یکی با هم مخالف در اثر چون که هردم راه خود را میزنم با دگر کس سازگاری چون کنم موج لشکرهای احوالم ببین هر یکی با دیگری در جنگ و کین می نگر در خود چنین جنگ گران پس چه مشغولی با جنگ دیگران یا مگر زین جنگ حقت واخرد، در جهان صلح یک رنگت برد. آن جهان جز باقی و آباد نیست، زان که آن ترکیب از ازداد نیست. این تفانی از زداید. زد را چون نباشد زد، نبود جز بقا. نفی زد کرد از بهشت آن بینزیر که نباشد شمس و زدش زمهریر. هست بیرنگی اصول رنگها سال ها باشد اصول جنگ ها. آن جهان است اصل این پرغم و ساق و اصل باشد اصل هر حجر و فراق. این مخالف از چیم؟ چی ای خاجم ها و از زاید وحدت این اعداد را زان که ما فرع ما چهار داد اصل خوی خود در فرع کرد ایجاد اصل گوهر جان چون ورای فاصل هاست خوی او این نیست خوی کبریاست جنگ ها بین کان اصول سال هاست چون نبی که جنگ او بهره خداست غالب است و چیر در هر دو جهان شرح این غالب نگنجد در دهان آب جیهون را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید گر شدی ادشان بحر معنوی فرجه کن در جزیره مصنوی فرجه کن چندان که اندر هر نفس مصنوی را معنوی بینی و بس باد که را زاب جو چونوا کند آب یک رنگی خود پیدا کند شاخه های تازه مرجان ببین میوه‌های رسته زاب جان ببین چونز حرف و سوت و دم یک تا شود آن همه بگذارد و دریا شود. حرف گو و حرف نوش و حرف ها هرسه حر جان گردند اندر انتها. ناندهنده و نان و نان پاک، ساده گردند از سور، گردند خاک. لیک، معنیشان بود در سه مقام، در مراتب هم ممیز هم مدام. خاک شد صورت، ولی معنی نشد. هر که گوید شد، تو گویش نه، نشد. در جهان روح، هر سه منتظر، گه ز صورت حارب و گه مستقر. امر آید در سوار رو در رود. باز هم زمرش مجرد می شود، پس لحال خلق و لحال امرش بدان خلق صورت امر جان راکب بران راکب و مرکوب در فرمان شاه جسم بر درگاه و جان در بارگاه چون که خواهد کاب آید در سبو، شاه گوید جیش جان را که ارکبو. باز جان ها را چخاند در اولو، بانگ آید از نقیبان که انزلو. بعد از این باریک خواهد شد سخن کم کن آتش هیزمش افزون مکن تا نجوشد های خرد زود دیگ ادراکات خرد است و فرود پاک سبحانی که سیبستان کند در غمام حرفشان پنهان کند زین غمام بانگ و حرف و گفت و پرده که سیب ناید غیر بوی. بار افزون کش تو این بو را بهوش، تا سوی اصلت برد بگرفت گوش. بو نگهدار و بپرهیز، از زکام تن بپش از باد و بود سرد آم تا نیند مشامت را زسر ای هواشان از زمستان سرد تر چون جمادند و فسرده و تنشگرف میجهد انفاسشان از تل برف چون زمین زین برف در پوشد کفن تیغ خورشید حسام الدین بزن هین برار از شرق سیف الله را گرم کن زان شرق این درگاه را برف را خنجر زند آن آفتاب سیل ها ریزد زکاها بر تراب زان که لا شرقی است و لا غربی است او با منجم روز و شب بیست او که چرا جز من نجوم بی هدا قبله کردی از لعیمی و اما تا خوشت ناید مقال آن امین در نبی که لا احب آفلین از قزه در پیش مه بستی کمر زن همی رنجی زوان شقل کمر منکری این را که شمسون کوورت شمس پیش تست اعلا مرتبت از ستاره دیده تصریف هوا ناخوشت آید ازن نجم و هوا خود مؤثرتر نباشد مه زنان ای بسانان که ببرد ارق جان خود مؤثرتر نباشد زهره زاب ای بسا آبا که کرد او تن خراب. مهر آن در جان توست پند دوست میزند برگوش تو بیرون پوست. پند ما در تو نگیرد ای فلان پند تو در ما نگیرد هم. بدان جوز مگر مفتاح خاص آید ز که مقالید و سماوات آن اوست این سخن همچون ستاره ستارست و قمر لیک به فرمان حق ندهد اثر این ستاره بی جهت تأثیر او می زند بر های جو که بیایید از جهت تا بی جهت تا ندراند شما را گارگ مات آنچنان که لمعه درپاش اوست شمس دنیا در صفت خفاش اوست هفت چرخ ازرقی در رق اوست پیک ماه اندر تبو در دق اوست زهره چنگ مسئله در وی زده مشتری با نقد جان پیش آمده در هوای دست بوس او زحل لیک خود را می نبیند آن محل دست و پا مریخ چندین خست از او وان اتارد صد قلم بشکست از او با منجم این همه انجام بجنگ، کیره ها کرده تو جان بگزیده رنگ جان ویستو، ما همه رنگ و رقوم کوکب هر فکر او جان نجوم فکر کو، آنجا همه نور است پاک بهر توست این لفظ فکر ای فکرناک هر ستاره خانه ندارد در اولا هیچ خانه در نگنجد نجم ما جای سوز اندر مکان کی در رود نور نامحدود را حد کی بود لیک تمثیل و تصویر کنند تا که در یابد عشقمند عشق مثل نبود لیک باشد آن مثیل تا کند عقل مجمد را گسیل. عقل سرتیزند لیکن پایسست، زان که دل ویران شده است و تن درست عقلشان در نقل دنیا پیچ پیچ فکرشان در ترک شهوت هیچ هیچ صدرشان در وقت دعوا همچو شرق صبرشان در وقت تقوا همچو برق عالمی ان در هنرها خودنما همچو عالم بی وفا وقت وفا وقت خودبینی نگنجد در جهان در گلوی تنگ گمگشته چنان این همه اوصافشان نیکو شود. بد نماند چون که نیکو جو شود گر منی گنده بود همچون منی چون به جان پیوست یا بد روشنی هر جمادی که کند رو در نبات از درخت بخت او روید حیات هر نبات کان بجان رو آورد خزروار از چشمه حیوان خورد باز جان چون روسوی جانان نهد رخت را در عمر به پایان نهد